بسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديتها لمنحا وتراوائع الخصالي راديوية صداية جند الله روية موجي يكسددو أعشاري هاف اف ام قد فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال.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 و احفظهم يا ربي عن زيغ و عن ضلالي يسعون جهدهم لكي يرضون ذا بسم الله الرحمن الرحيم حمد سنعو صفت بذات یكتاو بهمتا و درود صلوات فراوان بالرسول معظم إسلام حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم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 روزی جمعه 27 شوال خاطر احانت دشمنان اسلام به رسول معظم ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم تظاهرات گسترده در اثر مناطق افغانستان اسوی محسلین برا انداخته شد در اصر یک حادثه ای ترافیکی در یونان چهار جهانگری روسی کشته شدند روزی شنبه 28 شوال در اثر حملات مجاهدین در جنوب افغانستان دو عسکری آمریکایی کشته شدند. در اثر یک حمله دیگر در ولایت هلمند نیز دو عسکری آمریکایی کشته شدند. سفارت خانه های آمریکا در سودان و تونس مورد حملات مظاهره کنندگان قرار گرفت. روز یک شنبه 29 شوال در اثر حمله فیداکارانی مجاهدین امارت اسلامی در یکی از بزرگترین و امن مرکز هوایی و نظام انگلیسی ها و آمریکایی ها در ولایت هلمند بیش از 47 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند همچنین در این عملیات مبارک یازده فروند سیاره جنگی ایشان نیز از بین رفتند ناگفته نماند که این عملیات به خاطر قصاص توهین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در ولیت زابول یک پلیس شیجای افغان بالای نیروهای امریکای تیرباران نموده چهار نشان را به خطل رساند. روز دوشنبه، اول زلقه در اصر یک حمله استشادی در شری بغداد حدیقل هفتن کشته و حدود بیستن دیگر زخمی شدند در اصر خشونت های متواتر در سوریه حدیقل تن کشته شدند روز سی دوی دو زلقه گزارشاتی رسیده از وزارت <html>هلمند</html> می‌رساند که در اثر یک حمله فیدایی در قرارگاهی عسکری ارده افغان در گرشک دست کم 60 عسكر یاجیر کشته و زخمی شدند. هلمند بر متری صرفی عسکری محافظ کاروان اکمالاتی در گرشک انفجار صورت گرفت. قندهار در انفجار ماین در غوره که قندهار دو عسكر یاجیر مجروح گردید. روزگان یک اورده موتر رنجر یا عسکری یاجیر در ترنکوت شکاری ماین گردید. در اثر حملات مجاهدین در شیگل ولایت کنر دو تانک دشمنان کاملا تخریب گردید گزارشاتی رسید از ولایت لغمان می‌رساند که در اثر حملات مجاهدین در مهترلام مرکز آن ولایت 4 اسکر دشمن کشته و زخمی شدند خبرهای موثق از ولایت کابل میرساند که در اثر عملیات تروریستی در ولایت کابل دستکم ده عسكري خارجی و چهار عسكري امنیتی ملی کشته و شمار بیشترشان جراحت برداشتند ناگفته نماند که این عملیات بواسطه یک خواهر فدایه‌ به اسم ام محمد از جمله مهاجرین حرکت اسلامی ازبکستان بود صورت گرفت از خداوند متعال استدعا داریم که شهادت این خواهر با شهامت و غیور را به درگاه قد قبول فرموده و به با بازماندگانش صبر جمیل فرماید روز چار شنبه سی زلقه ده. قنده هار. تا یک حمله بر کاروان اکمالاتی دشمن در میوان دو و موتر تخریب و نو اسکری امنیتی کاروان کشته شدند گزارشات رسیده از اولاد هلمان میرسانند که تا یک درگیری در نرسی هفت اسکری دشمن کشته و تعداد زیادی زخمی شدند انفجار یک ماین در باباجی اولاد هلمان جان دو پولیس محلی را گرفت مرکزی پی آر تی در روال تغذی مورد حمله راکتی مجهادین قرار گرفت. در سر این ویژار یک مان در عادیشی دولت لیمان و شمالی خوانان شور از کر شدیدان زخمی کردیدند. در سر این چندین بام در نقاط مختلف پاکستان دستکم ده تن کشته شدند. در در گرفت. در نتجه یک حمله چریکی در شهر غزنی یک پلیسی افغان به قتل رسید خبرهای مواسق دولت کنر می که در اثر یک حمله فیدای در وطپور آنولت یازده اسکر امریکای کشته و هشتنی دیگر جراحت برداشتند در اصر حملات مجاهدین در جان خیلی ولت پکتیا سه تانک تخریب و هفت اسکر کشته شدند انفجار ماین در رباسنگی ولت هیرات پنج اسکر وردی عجیر را کشته و مجروح س ننگرهار در اثر حملات مجاهدین در شیرزات اولت ننگرهار چار اسکر اجیر کشته و زخمی شدند میدان وردک یک پسته حربی دشمنان اسلام در صدابات مورد حمله مجاهدین قرار گرفت اما صدای تلفات معلومات دقیق در, در دست نیست نورستان در نتیجه حملاتی پیدرپه مجاهدین در رسول کامدش اولت نورستان پنج پوسته دشمن حریق و هفته اسکر در آن به قتل رسیدند خبرهای رسیده از ولایت لوگر می که در اثر یک حمله مجاهدین در برکی برک اولت برک لوگر سی عسکری دشمن کشته شدند گزارشاتی رسیده از ولایت بادغیس میرسانند که در اثر انفجار مین کنار جاده در غرماش این اولت چهار عسکری ارضی افغان کشته و زخمی شدند در اثر انفجار یک بم دیگر در منطقه میروس مینه شهر قندهار که در یک موتور سیکل جاسازی شده بود دو پلیس کشته شدند در سر یک حملی مسلحانی مجاهدین در جره ولیت قندهار دو پولیس محلی کشته شدند. خبرهای موسیق از ولیت زابل می که یک عرد موتر یک ملاتی دشمند در مربوطات قلات تامه حریق گردید. پایان اخبار يا من تدعونه جناد ذكر حكيم لا لن يدوم لهم أماناً لن يدوم فلتُلهم أمالهم تهن وهي لا لن يدوم لهم أماناً لن يدوم فلتُلهم أمالهم تهن وهي فالنصر آتٍ لا محال لا محل أسمى القدور Shiir ja äädi. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. Täysin. علام اقبار لاهوری لم یلید و لم یولد قومی تو از رنگ و خون بالاتر است قیمتی یک اسودش ست احمر است قطره آبی و قمبری در بها برتر زیخون قیسری نکته ای همدمی فرزانه بین شهد را در خانه های لانه بین خطره از لاله خمراستی، خطره از نرگس شهلاستی این نمیگوید که من از انبرم، آن نمیگوید من از نیلوفرم ملت ما شعن ابراهیمی است، شهد ما ایمان ابراهیمی است گر نسب را جز ملت کردهی، رخ ندر کار اخوت کردهی در زمین ما نگیرت ریشعت حس نام مسلم هنوز اندیشه اد. ابن مسعود آن چراغ افروز عشق جسم جانی او سرابا سوز عشق سوخت از مرگی برادر سینه اش آب گردید از گداز آینه اش گریه های خیش را پایان ندید در غمش چون مادران شیون کشید ای دریغا آن سبخانی نیاس یاری من اندر دبستانی نیاس آه آن سروسهی بالای من در رهی عشق نبی هم پای من حیفی او محروم در باری نبی چشم من روشن زیدیداری نبی نسبت از روم و عرب پیوند ما نیست پابندی نسب پیوند ما دل به محبوب حجازی بستیم زینجهت با یک دیگر پیوسته ایم، رشته ای ما یک تولایش بس است، چشمی ما را کیف صحبایش بس است. مستی او ما بخونی ما دوید، کهنه را آتش زد و نو آفرید، عشق او سرمایه جمعیت است، همچون خون اندر آروقی ملت است. عشق در جان و نسب در پیکر است، رشته ای عشق از نسب محکم تر است، عشق ورزی از نسب باید گذشت، همز ایران و عرب باید گذشت، امتی و مصری و نوری حق است، هستی ما از وجودش مشتق است. هر که بند اقلیم و است، بی خبر از لمیلیت لم یولد است. و Mekabir ikhwatii Vaakat mekana Sufufu allajiiin Tuthiibu kalbi Fakad kanal muurinu Lahum siwana Femada yektubu Tariikhu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 از نفسهای نخستینی سحر آسیمان از آغوش خود نگذاردش کوکب و مانده پین داردش بوسدش اول شعای آفتاب شبنم از چشمش بشوید گردخاب رشته بالم یکن باید قوی تا تو در اقوام به همتا شوی آنکه ذاتش واحد است و لا شریک آن که ذاتش واحد است و لا شریک، بنده اش هم در نسازد با شریک. مومینی بالای هر بالاتری، غیرتی او بر نتابت همسری، خرقهی لا تحزنو اندر برش، انتم الاعلان تاجی بر سرش، انتم تاجی بر سرش. میکشد باری دو عالم دوشی او، بحروبر پرورده ای آغوش او، پیشی باطل تیغ و پیشی حق سپر امرو نهی او عیار خیر و شر در گریه ست شاله دارد اخگرش زندگی گیرت کمال از جوهرش در فضای این جهانی هایوهو نغمه پیدا نیست جستگبیری او افو عدل و و احسانش عظیم هم بقهر اندر مزاه او کریم سازی او در بزمها خاطر نواست سوزی او در رزمها آهنگداست در گلستان با ایناد دل هم سفیر در بیابان جره بازی سید گیر زیر گردون می نیا دلش بر فلک گیرت قرار آب و گلش تایرش منقار بر اختر زنت آنسوی ای این که بر برزنت تو به پروازی پری نگشودی کرمکستی زیر خاک آسودهی خار از مهجوری قرآن شدی شکوه سنجی گردشی دوران شدی ایچو شبنم بر زمین افتندهی در بغل داری کتاب زندهی تا کجا در خاک میگیری گیری وطن رخت بردار و سری گردون فکن رخت بردار و سری گردون فکن تبذل الروح احتسابا دعاء الليل البخل خداون ما را کافیست استو او بهترین کارساز است سپردن کار به خداوند جلد جلالهو، توکل نمودن به او، اعتماد داشتن به وعده اش، از خواست خدا به او گمان نیک داشتن و انتظار گره گشایی و حل مشکلات از سوی او از بزرگترین سمرات و نتایج ایمان و از مهمترین صفات مؤمنان است. هنگامی که بنده اطمینان میابد که سرانجام نیکی خواهد داشت و آنگاه که در همه کارهایش بر پروردگار خیش اعتماد و توکل می نماید، میبیند که تحت توجه و کفالت و مدد الهی است وقتی ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد گفت حسبون الله و نعم الوکیل یعنی خداوند ما را کافیست و او بهترین کارساز است آنگاه خداوند جل جلالهو آتش را برای او سرد و سلامت گردانید وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش به حجوم لشکریان کافر و گردانهای بادپرستان تهدید شدن گفتند حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم خداوند مارا کافی است و او بهترین کارساز است پس با نعمت و لطف از سوی خدا بازگشتند در حالی که هیچ زیان به آنها نرسید و از رضامندی خداوند پیروی نمودند و خداوند جل جلالوهو دارای فضل بزرگ است از آنجا که انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است به تنهایی نمیتواند به مبارزه با حوادث بپردازد و در برابر سختی ها مقاومت کند و به جنگ مشکلات بی اما وقتی به پروردگارش توکل کند به مولای خویش اعتماد نماید و کارش را به او بسپارد میتواند مقاومت و پایداری کند اگر انسان به خدا توکل نکند وقت سختی ها و مصائب انبنده ناچیز و نیازمند را از هر سو احاطه کنند چی چاره خواهد داشت. الله فتوکلو این کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن هستید بر خدا توکل نمایید. پس ای کسی که میخواهی خیرخواهی خودت باشید. بر خداوند نیرومند توانگر توکل کن. تا تو را از بلاها و سختیها نجات دهد. حسبون الله و نعم الوکیل را شعار خیش قرار بده. اگر مال و اندک گردید و دهکاریت زیاد شد و در آمد نداشتی فریاد براور حسبون الله و نعم الوکیل و هرگاه از دشمن ترسیدی یا تو را حراس از ستمگره برداشت و یا از بلای وحشت کردی فریاد بزن حسبون الله و نعم الوکیل و همین بس که پروردگارت هدایت کننده و یاور باشد قل سیرو فی الارض بگو در زمین سیاحت کنید از جمله چیزهایی که به انسان آرامش می دهد و ابرهای غم و اندوه را دور می نماید سیر و سیاحت در جهان پهناور است از این رو سفر کن و کتاب گشوده جهانی هستی را بینگر تا قلم های قدرت را ببینی که بر صفحات جهانی هستی نشانه های زیبایی را می نویسند مسافرت کن تا باغهای های زیبا و شگوفا و پردرخت را مشاهده کنی از خانه ات بیرون بیا و در آنچه پیرامونی توست بیندش، برکوها و درختان بالا بیرو و در دره ها فرود بیا، از آب زلال سر بکش و شاخه های یاسمن را ببوی، آنگاه چون پرنده نغمخانه که در فضا شناور است، روح خود را آزاد و راحت خواهی یافت، از خانه بیرون بیا، عینک سیاه را از چشمانت کنار بزن، و آنگاه تسبیح گویان و با ذکر خدا در راه های وسه الهی حرکت کن، بیکاری و گوشنوشینی در یک اتاق تنگ راهی بسیار موفقه برای است جهان تنها اتاق تو نیست و تو همه مردم نیستی. پس چرا در برابر گردانهای افسردگی تسلیم می شوی؟ با چشم و گوش و دلت و با تمامی وجود فریاد بزن. این فروخی فعف و ثقاله. سبک بار و سنگین بار حرکت کنید. بیا قرآن را بخوان که از نهرها و های انبوه، و از پرندگانی که نغمه عشق سر می حکایت می کند و از آب و داستانی پایین آمدن آن از تپاسخان می گوید سفر به گوشه و کنار زمین کاری مفید است که نسخه پزشکان در مورد کسی می باشد که حال و حوصله خودش را ندارد و اتاق کوچکش برای او تاریک و زلمانی می نماید و اتاق کوچکش برای او تاریک و زلمانی می نماید بیا تا سفر کنیم شادمان شویم Wafikro Tadaburna وتدبر نميهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ودر افرینوش آسمانها صبر صبر و زمین میاندیشند پروردگارا tu نیافریدی خدایا تو پاک و هستی زیبا با از عادات مردان و استثنایی است و تسلیم ناپذیر با ناخوشی ها روبرو میشوند. اگر منو تو صبر نکنیم چی میتوانیم بکنیم؟ آیا تو راهکار غیر از سبر نمودن سراغ داری؟ آیا تو غیر از شکبایی داری؟ یکی از بزرگان در میدان که بلاها در آن میتاختند و سختی ها در وجود او با یک دگر مسابقه می هرگاه از سختی و مشکل بیرون می آمد با سختی و مشکل دیگر روبرو می شد اما صبر و شکبایی را و زوره اعتماد به خدا را برتن کرده بود آره بزرگان چینین میکنند آنها با سختی ها بنابرد و مبارزه میپردازند و بلاها را دور میاندازند مردم برای عیادت ابو بکر رضی الله عنه که بمار بود آمدند و گفتند آیا طبیبی را برای معاینه اتفرا نخونیم؟ گفت طبیب مرا معاینه کرده است گفتند چی گفت؟ ابو بکر رضی الله عنه فرمود او میگوید من هرانچی بخواهم میکنم شکعبا باش و بدان شکعباییت برای خدا و بیاری اوست. با این باور که مشکلات حل خواهند شد و پایان خوبه خواهند داشت. و با طلب پاداش و امید به اینکه گناهان زدوده خواهند شد، شکعبایی بیورز. هرچند حوادیس تیره اتار باشند و درها برویت بسته و تاریک چون پیروزی با صبر و شکعبایی همراست و بدنبال سختی آسانی خواهد بود. سیره بزرگان را مطالعه نمودم، و از بزرگی صبر و شکبایی آنان و از توان تحملشان به حیرت افتادم. مصیبت ها بر آنان چون قطره های سرد باران فرو می رخته و آنها مانند کوها استوار و همچون حق پا بر جا بودن. بعد انسان پس از مدت کوتاه ناگاهان طلوعی فجر پیروزی و موفقیت چهره هایشان را درخشان می نموده است. آنها فقط به صبر و شکبایی اکتفا نکردند بلکه به مبارزه و جنگ با حوادیث و بلاها پرداختند و در برابری مسایب فریاد براوردند و آن را به مبارزه طلبیدند کره زمین را روی سرت مگذار بعضی از مردم وقت بر میروند جنگ جهانی در وجود و خیال آنها در میگیرد بهره و غنیمت آنان پس از پایان این جنگ زخم معده، فشار خون و قند خون است اینها با حوادیث میسوزن. از گیرانی قیمتها خشونگین میشوند به خاطر نیامدن باران آتش خشمشان شالور میگردد گردد و به علت پایین بودن مزد کارگران فریاد میزنند زنند. اینها هم وارد در پریشانی و اضطراب همیشگی به سر میبرند برند. یحسبون کل صایحتین علیهیم. هر بانگی را علیه خود می پین دارند. من به شما این است که کره زمین را روی سر خود نگذارید. بگذارید حوادیس روی زمین باشند و شما آنها را به درون خود نبرید. بعض دل مانند اسفنج است که شایعات و دروغ ها را میمکد و برای چیزهای پیش پا افتاده ناراحت می شود و برای هر چیز پریشان می گردد چنین قلب زامین نابودی صاحب خود میباشد عبرت ها و آموزه ها ایمان صاحبان مبادی حرا می و پریشانی ها ترس و افرادی افراد سست و ضعیف را افزایش می دید. قلب شجاع مفیدترین چیز در برابر تندباده ها و مسایب است. فرد شجاع و پرتحمل آرام و خونسرد است. اما انسان بزدل و ترسو روز چندین بار خودش را با شمشیر خیالات و اوهام میکشد. اگر میخواهی زندگی ثابت و استوار داشته باشی، با مسایل مختلف شجاعانه و با قدرت برخورد کن. نباید افرادی به ایمان تو را به ارزش و خار نمایند. از مکروهی آنها دلتنگ مباش از حوادث سختتر و استوارتر باش و از های بحرانها سرکشتر و از طوفانهای مهیب نیرومندتر باش خداوند به با بیچارهایی رحم کند که دل‌های ضعیفی دارند براستی که روزگار چقدر آنها را تکان می‌دهد و می‌لرزاند ولا تجدن لهم احرص الناس على حیا و انهر از منترین مردم بر زندگی خواهی یافت. اما افراد دلیر و باک در سایه مدد و یاری خدا هستند و به وعده الهی اعتماد دارند فانزل سکینت علیهم و خداون هم آرامش را بر آنها فرود آورد مسایل پیش پا افتاده تو را از بین نبرد علت نراحتی بسیار از افراد غمگین و نراحت مسئله پیش پا افتاده و به ارزش است. به منافقان نگاه کنید که چی چیزهای حمت آنها را از دستشان گرفته و عزم آنان را سست کرده است به نمونه از اقوال منافقین توجه کنید لا تنفروا في الحر در گرما برای جهاد بیرون نروید ائذلی ولا تفتني به من اجازه ماندن بده و مراد چاری فتنه مگردان این بیوتن عوره خانه های ما بپرده و رها و آسیب پذیر هستند Naqsha An Tusriban Da Ira, Mitersim Baloye Basarimor Birasat, Me wa Adan Allahu Warasuruhu Il Rurura, Khudawanwa Payamb Barash Juz Durur, Bamawaday Naduan. Tamomi Hadafi and Sonohoyin no kom wabadbah, dar shikam, bishkob, khona, waqasor khulasameshawat. آنها با آسمان آرمانها نگاه نینداخته و هرگز به ستارگان خوبیها چشم ندخته اند. آخرین فکر هر یک از آنها و نهایت دانش ایشان سواری و لباس و کفش و صفره می باشد. تعداد زیاد از مردم را می بینی که آنچی برایشان مهم است و صبحشان با آن می اندشند اختلافشان بازن یا فرزن یا خیشاوندان است و یا به خاطر شنیدن سخنزشت از کسی یا اتخاذ موضوع ناچیز به خود فشار می آورند و ناراحتند این مصیبت چنین است. آنها اهدافی والایه ندارند که خود را به آن مشغول کنند و به چیزهای بزرگ توجه ندارند که وقتشان را پر کند گفتند هرگاه ظرف خالی شود پر از هوا می گردد بنابراین در آنچه به آن اهمیت می بیاندیش که آیا سزاوار چنین تلاش ورنج هست یا نه چون تو از عقل گوشت، خون، استراحت و وقت خود صرف آن نمودهی و این فریب خوردن و زیان سهنگین در معامله و داد و ستود می باشد و در آمد ناچیز دارد روانشناسان می گوین برای هر چیز اندازه و جایگاه معقول قرار بده بهتر از این گفته خداوند جل جلالهوست که می فرماید قاد جعل الله لیکلی شیع را خداوند برای هر چیزی اندازه آفریده است، پس به هر مسئله اندازه و وزن آن را بده. و از زیادکاری و مبالغه بپرهز، آنچه برای اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر درخت و در بیعت ردوان مهم بود، و به پیمان بود، از این رو رزای خدا را به دست آوردن، مرد از آن جمع به فکری شطورش بود و به دنبالش میگشت، تا اینکه بیعت را از دست داد و محرومیت و ناکامی نصیبش گردید پس مشغولیت به مسایل به ارزش و پیش پا افتاده را دور بینداز تا بد انسان بشتر غمهایت از تو دور گردد و شاد و مسرور شوی. و اق سوفا يريد فل الجود يفن المل قبل فنائه و البخل في ماال شحيف يزيد فلاة التمسس قيعش لكل مد رب يود جديد فل الجود يفن قبل فناائه وال البخل في ما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 سلاحي أمتقي صهو المنوني إدارية برنامي التحديلي أمنحوني سلاحي أمتقي المنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتقي صهو المنوني إدارية باستوبي وقعي ولا لأذوب في فضل حنوني لم أعيش لأذوق Darin varnoma ja kuvi muhimi haftama uriden rasi kärarmiihin. Darin hafta, muzul menetäbimaa, tawhin b sahate muqaddasir salat, tawhin bahuitti muslimin mi boşat. Bismillah al rahim در دل مسلم مقام مصطفاست آبروی ما زینام مصطفاست هر کشق مصطفا سامان اوست بهربر در گوشه دمان اوست یک بار دیگر با انتشار فیلم موهن به صحت مقدس پیامبری عظیم شان اسلام حضرت محمد مصطفا صلی الله علیه و سلم دشمنی دشمنان کینتوس و عیناد دیرینیشان نسبت به اسلام و مقدسات مسلمین آشکار گردید و این عمل شنی وزید اخلاقی باعث جریحه دار شدن قلب میلیون ها مسلمان در سطح جهان شده و خشم مسلمانان را در سرتاسر دنیا برانگیخت. از آنجا که دشمنان با این جنایت بزرگ و نابخشودنی خود خواسته و عمدن آتش بیاری معلیکه شدند. همینک با موج عظیم از اعتراض ها و قیام های خودجوش امت اسلامی روبرو برو گردیده و با این کارشان یک بار دیگر اخلاق زشتی رذیله و عادتی پست درونی شان را بر ملا سخته و با کمال وقاحت و بی‌شرمی به صحت مقدس‌ترین انسان روی زمین و عزیزترین و محبوبترین شخصیت اعتقادی مسلمانان جناب سرور و سالار انبیا نور چشم مومینین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم گستاخانه اهانت ورزیدند و بدون توجه به عواقب این امر شنی ضد انسانی، ضد اخلاقی، ضد بشری، ضد فرهنگی و ضد عاطفی در حجم وسیعی بنشر و پخش این فیلم در سایت ها و رسانه های تصویری پرداخته اند و جالب اینجاست که سازندگان این فیلم موهن همه منصوب با آمریکایی جنایتکار هستند وزیر دینی دی مستقیم سنادید دی کفر و شرک و الحاد ساخته شده و به نمایش گذاشته می شود همزمان با ظاهر شدن سحنهای دلخراش از این فیلم حتاک در صفحه یوتیوب و دیگر سایت های عمومی قلب مسلمانان به شدت آمد. و انزجار عمومی از انتشار آن در سطح جهان رقم خورد و آتش خشم شیفدگان رسالت بلا فاصله پرچم آمریکا که نماد استقبار شیطان قدرت پوشالی حیثیت و آبرو آنکشور به حساب می در قاهره میسر توسط مسلمانان غیر و جوانان سلحشور آنکشور به زمین افگنده و به آتش کشیده شد و با جای آن بر فراز سفارت امریکا پرچم مناقش به لا اله الا الله محمد رسول الله به احتزازر آمد و این تازه شروع مرحله اعتراضات جهانی مسلمانان علیه این عمل زشت زده اخلاقی بود که به سرعت از قاهره بلیبیا انتقال یافت. و در لیبیا جوانان غیور محمدی بنابرایش و ارادت خاصشان نسبت به صحت مقدس نبوی با هجوم و حمله خودجوش و مخلصانه به داخل سفارت آمریکا یورش بردند و آتش احساسات مسلمانان ساختمان سفارت آمریکا را به آتش کشید و در احدام جانانه انتقام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام را از دشمنان اسلام گرفتند که در نتیجه این اقدام جوان مردانه جوانان با همد و شجاع لیبی در شری بن غازی سفیر و کارمندان آمریکایی همه در جا بدرک جهنم و عسل گردیدند و این آتش خشم همینک همچون شعلهور است ولاحزاب لهذا برخشم مسلمانان افزوده می شود و تداوم این وضعیت در دل دشمنان ترس و وحشتی فوق العاده ای را ایجاد نموده که این ترس به خوبی در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملموس بود و در اقدام مشابه آنچه که در مصر و لیبی اتفاق افتاد در یمن نیز تعدادی از جوانان مسلمان و موتریس بر سفارت آمریکا در صنعا هجوم بردند و در سداد به آتش کشیدن سفارت برآمدند و این فریاد همچنان ادامه دارد آره اکنون بر همه مسلمانان جهان فرضی است که هر کسی در حد توان و وسیخش برای دفاع از عرضشای اسلام و مقدسات و مخصوصاً دفاع از پیانبر عزیز که در واقع دفاع از مسلمانیشان هست بپا خواسته و در این مسیر از هیچ کوشش و تلاشی دریق نورزند و هر کدام بناوی در هر گوشه از این جهان با اقدامات کافر شکن پشت دشمنان را بلرزه در آورده و خواب آسائش را از چشمان کری آنها سلب نموده و با آنها بفهمانند که دین اسلام پیروان دارد و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها نیست بلکه میلیون ها قلب در عشق شخصیت آن محبوب حجازی میتپد و شیفتگان و پیروان راستین رسالت اجازه گستاخی به احدی را دهند. و گستاخی گستاخان زمان را تحمل نکرده و آنها را جواب دندان شکن داده و هرطوری شده انتقام پیامبرشان را میگیرند حتی اگر در این راه پای جان در میان باشد حاضرند جانهای شیرینشان را با افتخار فدای نامی با عظمت و مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نموده و جانانانه در راه عشق بر رسول الله فدا شوند راستی چرا دشمنان اسلام همیشه دست به چنین اقداماتی میزنند و به احساسات میلیونها مسلمان بازی کرده و به وقاحت تمام مرتکب چنین اعمال شرم آور میشوند و همه هستی و شرف مسلمان را به باز سخره می گیرند چرا دشمنان اسلام قرآن و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هرچند وقت یک بار حالت جنون میگیرند و در کنار تهاجم نابرابر نظامیشان بر سرزمین های مسلمین باز روی زخم مسلمانان نمک پاشیده و دست به تهاجم فرهنگی و شکستن حرمت مقدسات مسلمانان زده و از این ناحیه روح لطیف آنها را شکنجه و آزار می دهند واضح است وقتی همت و قدرت پوشالی کفر در سطح جهان توسطی غیور مردان عرصه جهاد و قیام شکسته شد و توقعت ضد بشری آنها از بین رفت و عمار ننگین ضد انسانی آنها برای جهانیان برملا گردید دشمن چاره ای جز جنگی و تنوع آن نیافت که این خود بدتر قبل و نابودی آن را در حال این حتاکی اخیر دشمنان هرچی که هست دنباله همان جنگی دوامدار دشمنان در طول تاریخ است که خوشبختانه همیشه برای دشمنان دین مقدس اسلام نتایج معکوس به همراه داشته است اما آنچه که عیان است این است که دشمنی دشمنان و مخصوصاwidehatکی های آنها مسبوق به سابقه است و این اولین بار نیست که اینها به مقدسات مسلمانان توهین می کنند بلکه برای چندومین بار مخصوصا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 تمام عینادشان را علیه اسلام و مسلمین به کار بسته و با تمام بغزشان در پوشش لباس های رنگ و رنگ و از طریق کانال های گناگون به جنگ اسلام و مسلمانان می آیند. اما با فضل و مرحمت خدا هر وار محکمتر از قبل از دست جوانان سلحشوری امت اسلام تبانچه میخورند و بهتر از گذشته زیر مشتای آهنین مسلمانان آزاد خیرت میشوند. و انشاءالله این اقدام یخیر دشمنان اسلام و بشریت نیز به جواب نمیماند. و به زودی فرزندان رشید اسلام دستانگرهای داغ جهاد و مبارزه مخصوصا در خاک سلحشوران و رادمردان تاریخ اسلام در عصر حاضر. حاک جهاد و مبارزه یعنی افغانستان جواب این اقدام کسیف و بزدلانه آنها را خواهند داد و کاری خواهند کرد که دشمنان اسلام دیگر جرعتی همچون جسارتها را نداشته و چنان درسی با آنها خواهند داد که تا ابد فراموش نکنند در پایان واجب اخلاقی همه طیف ها و گروه های مذهبی سیاسی اجتماعی و فرهنگی امت اسلامی می باشد که همه هم صدا، فریادی علی رسول الله سر داده و علیه این زشت و مذبوحانه دشمنان قسم خورده و شکست خورده بسیج شده و به مبارزه پرداخته و تا پای جان از هیچ تلاشی دریق نوردن تا دشمنان بدانن که دین خدا و پیامبری عزیزش تنها نیست و جان و شیفتگان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در هر عصر و زمانی وجود دارند و بی حاضر هستند که در هر برها از زمان سحنه های حماسی عاشقان و پروانگان دیروز شم نبوت را تکرار کرده با یاد خاطره سربازان جان و سحنه های زیبای بدر و خود و خونین که همه مملو از شهامت و جان اے سور وفاداری هستند زندہ کنند باشندگان اسلام را مثل همیشه مایوس و ناامید خوار و ذلیل نموده و نام پر افتخاری محمد الله علیه و وسلم را با il muhtaram, jabahat bil-fajini laita pi, der haimin jo barnomej so azhuzurisumma muraxas mixa vim, so digar, ورحمة الله وبركاته الحور <تصفيق> يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وان اجرابنا ذو السدين ستجر النصر لاحله شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وان اجرابنا ذو السدين وان وقف الطغاة امامك الردي وإن كادوا بكينهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني وإن وقف الطغاة أمام قربي وإن كادوا بكينهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني